گفتیم که قلب به سه گونه است یکی قلب گوشتی که عضله شک پشت قفسه سینه دنده های چپ که پمپاژ خون در همه بدن میکنه بعد گفتیم سی علت هست برای ایجاد بیماری پرفشاری خون و ناراحتی های قلبی از حیث دریچه های قلب از حیث رق آورت از حیث دهلیز راست و چپ از حیث سوراخ اضافی در بطن راست و چپ که سوراخ میانی بین بطن راست و چپه تو بحسایم تپش قلب بالا یا تپش قلب پایین و مانند اینها که گاهی در جنین هست که در انسان عادی اگر اون مقدار تپش داشته باشین بسیار حالش بد میشه میفته رو زمین و اورژانس ویجس یعنی فقریت های پزشکی ویجه هست مثلا اگر یک دقیقه، سه دقیقه تا پنج شیش دقیقه مثلا اکسیجن لازم به اندام حیاتی جنین نرسین تپش قلب جنین در دقیق 160 بار نشود و حال اینکه من و شما از 90 بار به بالا بسیار فن بد میشه 140 اورژانسی 160 که تموم کردیم بذامیم اورژانسی خاص حالا خدای متعال بین بطن راست و چپ قلب جنین سوراخ اضافه گذاشتیم لذا در تپش های بالا تموم نمی‌کنه، بلکه حفظ اندام حیاتی می مخصوصاً مخصوصا اگر جنین بند ناف دور گردنش تاب خورده باشیم که بسیار جرایی و سزارین در هر دو صورت مشکله حالا خواستم بگم که تو عالم دنیا که به دنیا اومدین باز این قلب گشتیم سی علت برای ایجاد بیماریش داره که قبلا اوستون گفتم هم روایات مثلا اگر کسی دائما خشمگین باشد یا قذب باشد به بیماری پرپشاری خون و بیماری های قلبی نیز مبتلا می شود. به نوع افتخیزه، ماکزیموم و مینیموم تو بحث پمپاژم ازوله قلب فشار انقباضی و فشار انبساطی قلب درش اختلال پیش می آید و اگر دارای استرس و استراب باشد مبتلا به مینیموم اضافی هم می شود مثلا دوازده نه دوازده ده فشار مینیمومش مثلا هشت باید باشه یا 7 و نیم در فوق تخصیصی قلب و ارو میاد روی نه روی ده روی 11 بازم حالش بد میشه تصالب فهم بودیم؟ پس خشونت بیجا و مستنه دائما عصبانی بودن یا خشمگین بودن یکی از چیزایی که نارسایی قلبی می آوره. لذا هم در قرآن مجید هم روایات اهل بیت عصمت و طالت یکی از صفات خوبان رو که مؤمنین و مؤمناتن چی میشواره؟ والکاومین الغیظ والعافینا عن الناس این تازه تو بحث قلب گوشتی بود که قلب جسم و جسدت اما اگر قلب روان باشد قلب روان چیه؟ قوه مفکر به نوع کار کرده فکر خوب متمرکز این فکر خوب متمرکز قلب قوه مفکر است گرچه در ظاهر عمل کرده صحیح فکر است یک بار دیگه بحث قلب روان نیست که قوه مفکر قلب اوست نه بحث قلب روح و قلب نور شخص است اینجا عقل فعال کاربردی یا اتصال عقل به وحی این قلب روح و نور است حالا اینا سخت میشه اذیت میشه حالا تو بحث همین قلب گوشتی که بودیم یکی از علل ایجاد نارسایی قلبی و بیماری های قلبی چیه؟ دائمان قذبناک بودن، خشبین بودن. یکی دیگه از علت سر و صدای زیاد مثل پیک باره ترافینک یا کاباره یا دانسینگ و اماننده شب شبنشینی های مبتزرین. یکی دیگه از چیزهایی که هم عمر انسان رو کوتاه میکنه و هم یکی از عدله ناباروری در زنان و مردان پسران و دخترانه و هم ایجاد بیماری قلبی میکنه لباسهای تنگ پوشیدن به اصطلاح امروزی ها لباسهای چسب پوشیدن حالا چه هفتی تنگ یا مایوی تنگ یا شروار لی یا ایزی تنگ که چسبیده به بدنشون ها تمام زیبای اندام یا آبرولیزی همه معلوم میشه از نمای خارجی اینها سه بیماری همزمان میاره ناراهتی های قلبی یکی از علل ناباروری حتی تو پزشکی جدیدم ثابت شده با اینکه تو روایات از قبل بیان شده حالا ما اینجا هم آوردیم شماره 29 شماره 30 جیغ زدن داد زدن همیشه عادت داشتن با صدای بلند صحبت کردن های طولانی معلمی چند شیفته یا استاد دانشگاه یا نه یکی پرچونه پرحرفی پرحرفی چند بدی داره یکی چند چیه قلبی میاره اینم یا یادتون باشه پس گاهگاهی در بین صحبتاتون بین فامیل یا غیر فامیل یا استاد و معلم هستی یا گاهگاهی بین صحبتات سکوت کن در رابطه با مطالبت فکر کن یا فرمایشاتی که دیگران گفتن یکم فکر کن با این سکوت به و به موقع چند خدمت میکنی هم به خودت هم به دیگران حالا اینجا فعلا بحثمون در ازوله قلب خودت تمومش حالا آیا روای مطالب داره؟ بله که داره مثلا اکلوس سفرجل خوردن میوه گلابی خوردن میوه به سفرجه. به رسیده زرد رنگ معتل یا مربای این گونه به رو درست کنید یعنی هر کیلو به به ازاش سفنجان آب و به نسبت مساوی قند یا شکر یا عسل این مربای به مثلا پنج کیلو به خریدی با قاشق به با چاقو به دنایش جدا کن به دنایش زخمی نشه بعد پوستاش اب نداره باشه پرزش هم که زیر آب بردی این 5 کیلو چند کیلو عسل پنج کیلو هم عسل پول نبود 5 کیلو شکر پول نبود 5 کیلو قند یه <تصفح> جای پول در بیاری بیار. اون <تصفح> خستگی تون در حالا به نسبت هر کیلو سه سف... آب آب زیاد نریزی یا بگی انقدر حاجق آب میریزم تا بیاد روی لپای به نه اینجوری نه ممکنه تزالفت انقدر آب باشه تو قصه‌ی آب نخور بعد رو شعله متوسط که به جوش ها همین لپای بهمیر پایین آب میاد رو وقتی اصل بزنی یا بعد از این که شد شعله رو خاموش کردی یا نه نمیخوای اصل بزنی شکر و قند مخوایی بزنی همین آنها که داره میجوشه حالا شکر و قن که بریزی باز بیشتر آب میده تصال فهم بودیم در قابلام هم باز باشه تا این لپای به جر نشه مثل لاستیک نشه ما به این نون بربری هم وقتی که سبوس نداره یکم میمونا جر میشه بهش میگیم نون لاستیکی چون تازهش خوبه موندش نمیتونی بخوری یعنیم دیگه با سبوسش خوبه پس یکی از تقویت کننده های قلب چی شد اکلو سفر جر روایات هم داریم هم یعنی خوردن میوه به رسیده زرد رنگ معتر. یا مثال بزنم مربای به دوم کسی وقت نداره حوصله نره پول نداره اما یوبسد داره آبش بگیره یه استکان بخوره یه استکان آب به رسید دوم اکلن کومسرا با الف مقصوره مثل صغرا کبرا میگیم الکمثرا با سه سنخته یعنی گلابی رسیده شیرین ارگانیک طبیعی. اینم یه عدد تو بیس چند تا فائده داره یک چمچیه مفرح قلبه سوام گل بومادران یا دم کرده گل بومادران یه قاشق چای خوری گل بو مادران میریزی تو استکان روش آب جوش میریزی در دقیقه صحب میکنی بعد با اثر شیرین کن بخور خیلی فواهد داره یکیشم تقویت قلبه برای حضرت خانوما و دختران فایدهای دیگه هم داره که مربوط به حضرت خانوماست اگر کسی ترشعات اضافی محبلی داره و یا مطالب دیگه نمیتونم بگم این دم کرده گل و بو مادران برای اینا حرف اول میزنه. حتی اگر قاعدگیای های نامنظم دارد که چای رازیانه برای اونها خوب است دم کرده گل و بو مادران تنظیم قاعدگی هم می نماید و دیگه یکی دیگه از چیزهایی که تقویت قلب میاره آره مربای عمله با آی با کلا مربای این هم تقویت قلب می آوره. حالا مباعثه امروز ما تو بحث عرقیات طبیعی به نوع داروی مفرده یا داروی مرکبه پیشگیری و درمان آنچی که مربوط به قلب بیماری های قلبی قند خون، فشار خون، چربی خون و مانند این هاست. درباره اینا بکنیم. عرقیات طبیعی. استفاده از عرقیات طبیعی سنتی گاهی به نوع داروی مفرده عرقی مثلا تا حدود 22 مورد دارو مفرده مرکب داروی مفرده گفتم در عرقیات طبیعی 22 مورد در رابطه با دارو مرکبه عرقی پنج مورد گفتم حالا دونه دونه میخونم اولین دارو مفرده عرقی گل محمدی یا گلاب طبیعی از گل محمدی مقضی اعصاب قلب خیلی شی مقی اعصاب قلب خب باید فرمان بیاد به انقبا فرمان بیاد به انبساط فرمان بیاد به دهلیزه راست و چ درست همجا. فرمان بیاد به رده از آرت یا سخرگ اصلی و سپس تقسیم به شریان های فر فرمان میخواد. پس باید عصب مربوط به این قسمت رو تقویت کنیم حالا گلاب طبیعی گل محمدی خیلی فواید داشت ملین بود ضد یبوست بود خوشبو کننده عرق بود خوشبو کننده پوست بدن بود حالا مباحث خودمون مقوی اعصاب قلب اگر کسی اخلاط خونی داره در سر در بینی در حال، مخصوصا در فصل پاییز دافع اخلاط خونی هم هست دومین عرق مفرد عرق مرزنجوش مرزنجوش عرقش و خودش بازکننده عروق بازکننده اروق نذیر کرفس تره فرنگی کاهو بدون سس مرزنجوش نظیر ایناست باز کننده اروغ پس های قلبی و گرفتیگی های مغزی رو باز می کنه اکسیژن کم برسه به مغز همیشه کسل خوابا باشی و چورتی یا اینکه بخشی از مغز اکسیجن نرسه و ایجاد سکته بشه که چار سکته مغزیه و سلولایم تا رنگ دونین کوره مخ طول عمرش کتا شود و دو چاره مرگ مغزی و سپس لمس بدن یا مرحوم شدن بشین نیچه خوشمزه آسون عرق مرزم جوش همه چی طبیعی ها اکثر این عرقیات تو بازار آب مقتر به اضافه اوسانس شیمیاییه من میگم خودت بخری طبیعی یا کسی که مطمئنی تبیعی درست کرده باشه سوم عرق گشنیز هم مفید برای قلب هم مفید برای مغزه هم مفید برای سیستم گوارشیه هم مفرّه هم مقوی مغز و اعصاب و قلب مخصوصاً برای کسانی که چربی های خونشون بالاست کلسترول و و یا انزیم های کبدیشون بالاست برای اونا خوب تره اما زیاد روی در مصرف گشنیز و یا عرق گشنیز عوارض بسیار بدی دارد یکیشتیه مومنا یه مرتبه به سیم آدم میزنه در بخشی لفظم بد میشه یعنی آدم خلمدنگ میشه خبلون لذا زیاده روی در گشنیز نباید کرد نارسایی های روانی می آورد اختلالات روانی می آورد خیلی مهمیاتون باشه در هفته اول بعد از زفاف عروس خانون نباید بخوره زیرا عقیمی می آورد که تو روایاتشیه کذبر بازه زنبوری یعنی گشنیز توضیح هم دادم چهارم از عرقیات طبیعی مفرده تو بحث قلب و اروق چهارم عرق گزنه فواعد زیادی داره از جمله 15 واحد قند خون فرد رو پایین میاره در دیابتی ها یکی از بهترین دارو هاست مخصوصا در سطح مزاج ها بهتر هم جواب میده حالا تو مبایسته ما عرق گزنه مقوی اعصاب و قلب و دفع کننده خلط خونی و کاهش درنده قند خونه پنجم عرق طبیعی عناب میبهی عناب عرق طبیعی عناب مخلوط با اصل میتونی اصلت هم اصل اناب بذاری که مختص خراسان جنوبی و قاین و بیرجند و داقستون بیا تا روستای اردکول اولین روستای زیرکو قاینات این منطقه قاینات این اصل منحصر به فرد دارن یکی اصل اناب یکی اصل زرشک حالا اینجا این عرق طبیعی عناب رو اگر با اصل عناب بخوری که نورن علا نور خیلی فواهد داره حالا یکیش مباعثه ماست تولید خون سالم تمیز و به قول امروزی ها تو مکانیک ریگلاژ، اوبرحال، کبد و تحالت روبراه میکنه به جای چند داروی شیمیایی مومن این خیلی مهمه چون تو کشورمون ابتلاعات زیاده این خیلی مهمه این دو کلمه آخر که گفتم پس عناب اگر زیاد بخوری زرد داره اما مصلحش چیه؟ اصل حالا ما در این افراد چیکار میکنیم؟ اصلش هم اصل عناب قرار میدیم که زنبور اصل از شهد گلهای انناب خورده و اصل تولید کرده. پس این انناب رو با مثلا چارده تا انناب با یه قاشق پلو خوری اصل انناب. یا یه استکان عرق طبیعی عناب با یه قاشق پلو خوری اصل انناب هم بزن بخور. خیرش هم ببین. مطلب شیشون. عرق کلپوره. کسانی که درد های قفسه سینه دارن از جناق سینه به صورت منتشر یعنی درد منتشره در قفسه سینه اینکه جناق سینه به نوع درد منتشره درد میگیره میگیم آنژین صدری دارد درمان آنژین صدری استرس نداشته باشه استراب نداشته باشه خودخوری نکنه علکی با افراد بحث نکنه یک و دو نکنه با قول مشهدی ها کلکل نکنه بعد مومن عرق کلپوره مخلوط با اصل آویشن بخوره عرق کلپوره یا گل کلپوره که اگر چنین شخصی مثلا خانوم هم باشه بچه شیرده هم داشته باشه هم شیر مادر زیاد میشه و هم آنجین صدریش خوب میشه یا تون باشه چی گفتم پس یه استکان عرق کلپوره یا یه قاشق چای خوری گل یا برگ کلپوره مومنان گلش بهتره اینجا مومنان مخلوط با اصل آبیشن یا تو آبجوش به لهم دم بکشه بعد مخلوط با اصل آبیشن کنی بخوره عاده کلپوره در درمان آنژین صدری یعنی درده در ناحیه سینه و قلب توضیح دادم همچنین کاهش قند خونم میاره تو گرم مزاجا کمتر اما در سرد مزاجا سریع قند خونم میاره پایین گل برگ تسافهملی گل و برگ کلپوره در سرد مزاجان خیلی هم تلخه سریعا قند خونم میاره پایین از بادام تلخ ترختره به مثل آمیانه حاجه این چیه که مثل زهر مار میمونه <تصفيق> اصطلاحات مردمه <تصفيق> شماره هفت یا گفتم باز کننده های اروغ قلب چند تا شمردم قدیم و کرفس و کاهو و فرنگی و برگ چقندر یه چیزایی شمردم حالا عرق کرفس عرقیات طبیعی عرق کرپس بازکننده عروق بسته حتی عروق کرونر قلب هشتم عرق کاهو مثل خود کاهو ولی عرقیات طبیعی هم باشه 50 درصد خواص اسفر رو داره حالا عرق کاهو تصفیه کننده خون نهم عرق برگ چقندر این خود برگ چقنده تصفیه کننده خونم هست، ازدیاد شیر مادرم هست، مخصوصاً پخته برگ چقنده و همچنین بخارپز لبو چیزایی دیگه هم داره مامانم مثل فولات، یعنی اسید فولیک. به جای قرص اسید فولیکم میتونی بخوری که کمخونی از این هیصم خوب بشه. 11 دهم عرق شیوید مثل خود شیوید پایین آورنده چربی های مزر خونه و کاهش دهنده فشار خونه یعنی فشار خونه ناشی از تسلاب شرائین هم کم میشه چون فشار خون هفت نوع دیگه باز توجه داشته باشیم که عرق شیوید مثل خود شیوید نباید زیاد روی در مصرف کنیم یه قاشق چای خوری تا یه قاشق بخوری پودرش تو 24 ساعت یک بار یا عرقش نصف استکان تا یه استکان بیشتر ازت بخوری تو 24 ساعت چرا چون هم نور چشم کم میشه هم سستی زانو هم شل شدن تاندونای پشت پا میاره وقتی اپلا نردمون میخای بیای پایین یه مرتبه پات تا میشه کله پا میشه نازیر قرص های شیمیایی چهار مدل پام دیاسپام کلروسپام اکساسپام اینا اینا هم سستی زانو و شل شدن تاندونای پشت پا میاره یعنی خود درمانی نبات کنی زیر نظر متخصص حالا میخواد یه مسکن قوی یا ضعیف بده اشکال نداره در موارد اورژانسی اما برای همیشه خوب نیست آدم زمین گیر میشوا مخصوصا فلج اندامی به نوع زانو مچ لگن میگیره الکی الکی زمین گیر میشه دوازدهم عرق طبیعی شب‌بلیله هم پایین آورنده فشارخونه هم پایین آورنده چربیای مضر خونه این هم مال عرق شب‌بلیله سیزدهم عرق شاهتره هم تصفیه کننده خونه مثل خود شاتره هم تصفیه کننده خونه هم صفرا بره کسایی که قلزت صفرا دارن یا لجن صفراوی دو چیزا رقیق کننده صفرا و سبب میشه صفرا اضافی از مجرای صفرا تو 12 بریزه این متورم نشه رسوبات صفرا بالا نره زمینه سنگ سفرا پیش نیاد هم کسی که کبد چرب داره چه گرید یک چه گرید دو یرقان عادی هپاتیت آ چه هپاتیت بی شاتره یکی از داروهای بسیار مهمه چه خودشه بخوره موامنا چه عرق شاتره تصاف فهم بودیم یکی هم مبایسته خودمونه تصفیه خون میکنه کاهش دهنده قلزت خونه کسانی که خون چسبنده دارن یعنی پلاکت اضافه در خون دارن و بیش از اندازه خونشون قلزت دارد یا پلاکت های خونشون بیش از اندازه بالا هست اینا هر لحظه امکان سکته برای اینها هست حالا اینجا عرق شاه پیشگیری میکنه و درمان میکنه چسبندگی خون رو صفا کردی؟ سلام برسون. یکی از دکترای بسیار خوبتون مرحوم شد. متقصص بیماریای خون بود و کتاب اصول تب داخلی هاریسون قسمت بیماریای خونش رو ترجمه کرده بود. حالا مرحوم شد. این کتابم بهنش رو آستان قدس رزوی چاب کرده بود مامنام. قطورم هست. اصلا یه یادیگاری بگم. از این افرادم داریم بعضی ها هم مباعثه من بودن تا این مشکل گاهرشاد او وقتا که در سحاشیمال عبدالله زیر گمبد میگفتم یه دو نفر مومنم اونجا میامدن یکیشون متخصص بیماری های خون بود گفتم عمو جون لباس بذار دیگه دامادم بشه هم لباس گذاشتم داماد شد ماشالله یکی دیگه شون گفتم داماد شد داماد شد هم لباس نگذاشته این هم این دفتر تبلیغات اسلامی قوم چار رو خسروی ساختم و جیگوله شکه جدیده اسماره نمیبرم ببخشینا همه تون خوبین اسماره نمیبرم به خاطر اینکه دشمن خبیسه علیکی نره رو ترور کنه همدن اسم نمیبرم ببخشینا حالا خدا قیامت معلومه دی. اینا خوش استعداد بودن مومن هی hey, پیچ درس منطقو رو بیشتر میکنم میدم اینا میفهمن پیچش بیشتر علمی میگن علمی ترم میگن شنمنده وقتی خوب باشه و خوش فهم گوینده به زوق میاد هی hey, بیشتر بگه میگه حرف هم حروم نمیشه خدا رحمت کنه آیت الله شهید سید محمد باقر صد الله مقامه ایشون مبانی منطقی استقرام میگفت خیلی سخت مومن توش ریاضیات هست، فیزیک هست، فیزیک, هست. فیزیک قوانتوم همون فارسیش میخوای بخونی سخته. تا چه برزه کتاب عربیش؟ خدا رحمت کنه خواهد جانش بنت رو. او تازه قلم آقا رو آسون میکرد. مثلا. چارده هم. یکی از چیزهایی که مفید فایده هست عرق زنیان. حاجقااعت در وارد میشم اول شیکم هم سلام میکنه چاق یهشی میدارم دارم غه نخورم بعد هر غذا یه استکان آسی به تازه بخور تا 24 ساعت یه استکان عرق طبیعی زنیان بخور. حالا مباعسه ما تو قلب عورغ. عرق زنیان کسانی که فشار خونشون همیشه پایینه گیجگی جنگ میزنه و سرگیجه داره و چش سیاهی سیایی میره خونه دوره سرش میچرخه. همیشه فیشارخون انقبازیش ماکزیمومش همیشه ده نو هش هفت حالا چه زن باشه چه شوهر؟ سلام علی که اینا پیشکش کش نباید هم دیگه رو قشنگ ببینیم چشماش تا میره شد این این عرق زنیان ها بالا برنده فشارخونه برای کسایی که همیشه فیشارخونشون پایینه یک دو درجه فشارخونه برای بالا مثلا ده میاره دوازده پنج دقیقه وقت داره چشم توضیح کم میدم عرق زنیان بالابرنده فشار خون و درمان کننده چاقی شکمیه اما دو مورد احتیاط داره زنانی که حاملن و زنانی که بچی شیردن نباید بخورن چون سخت جنین میاره و شیر مادر کم میشه سپس قط میشه این دو مورد احتیاط پونزده هم عرق بابونه برای همه خوبه مقصوصا برای خانمایی که آمنوره اولیه یا آمنوره سانویه دارن یعنی قطع چندین هفتگی قاعدگی دارن قاعدگی نامنظم یا نه قطع چندین ماهی هی ساعت بیولوژیک یا قاعدگی دارن بعد یاشون قطع قاعدگی چندین ساله دارن یعنی آمنوره سانویه حالا اینجا مؤمن عرق بابونه قاعد آوره همچون سیاهدانه همچون گلپر همچون شاهی همچون دارچین همچون زعفران حالا یکیش هم مبایسته خودم عرق بابونه قاعد آور در زنان و رقیق کننده خون قلیز در مسانه اه, یعنی چی آقا بعضیا ها درد های زیرنافی دارن دست اینجوری بذار زیر نافت حالا چه مرد، چه زن چه پسر چه دختر بعضیا ها درد های زیرنافی دارن دائما پس سونوگرافی هم میره سنگ مسانه نداره هم میکنه میگه آقا زخامت مثانه نداری ریزش سلولی مثانه هم نداری اما درد مثانه داره و سوزش ادرار با اینکه عفونت ادراری ندارد چون خون گردش در مثانه قلیزه اینجا رقیقش کن با چی مؤمنو همینی که خوندم دم کرده گل بابونه یا خوردن عرق بابونه یادتون باشم بعضی انقد اینجا داروهای اشتباه میخورم حالا نمیخوام اسم ببرم عرق بابونه قاعده آور در زنان و رقیق کننده خون قلیز در مسانه چه در زن چه در مرد توضیح دادم مطلب 16 اگر باز کسی فشار خونش همیشه خیلی پایینه نزیر عرق زنیان هست، عرق آبیشن، عرق آبیشن، هم مقوی احصابه، هم ضد استرابه، هم فشارخونه پایین رو میبره بالا. اگر کسی همیشه فشارخونه زیر دهه ها، میاره بالا به دوازده میرسونه. فشارخونه نرماله تو فشار انقبازی قلب. آویشان آویشن افزایشنده فشار خون مقی اعصاب حتی ضد تشناجمع هست ضد تشنج چیه می میخوام یادتون نره. چون گاهی تشنج و سر هست دست پتون گم نکنه. یکی چیه آویشان یا دم کرده آبیشن یا عرق آویشان یکی دیگه چیه گل رای یا دم کردش یکی دیگه؟ گل باهار نارنج که از همه شون قوی تره اینا ضد زد تشنجه زده سرعه به جای والپروات, سود... سودیون،, والپروات سودیون دیمیترین همالنده اینا یا مسکن قوی میده دکتر مثلا مسکن قوی دیاسپام میده به جای اونا این ستا هر هشت ساعت یک کدومشی بخوره قبراق فقط جلوی شخص تشنجی چیزای بد و دردناک و وحشتناک و از این چیزا که قم و و این چیزا نه حتی قربون امام حسین علیه السلام برم مجلس امام حسین شفا و بخشه اما این دیگه نیم ساعت یک ساعت که چند تا مده و منبری نه این پنج دقیقه نشست دل شکست و مظلومیت امام حسین کافیه یه قطره اشک شما بس باید بره کسی که ضعف احصاب شدید داره یا تشنج و سرعیه نباید زیاد بشینا جایز نیست هم نمیقدر نشست دلشی که از اوسف مظلومیت ماموسی یه قطعه اشکش اومد کافیه سوابش برده خب این، اینم بخونم تموم شیده قلب مفرداش نه دیگه دو سه دقیقه نمیشه پس یادتون باشه از هیفدهش مند شونزه هیفده سرابات و محمد و آل محمد در مورد خوردن گلاب سوال کردن آجار زیایی فرمودن مگر خوردن گلاب مکروه نیست حالا ما خیلی بحث فرقیشون نمیخواییم باز کنیم در مورد همین گلاب یه توضیح مختصری بفرمایید دوباره استاد دلیلی بر کراحت گلاب طبیعی نداریم این دیگه فتوای جیبی دادیم فتوای جیبی اسلام جیبی بدتر از اسلام امریکایی <تصفح> ناراحت نشینام. <تصفح> <تصفح> پس گلاب مستحبه. <تصفح> بله تو ماه مبارک رموان برای اینکه شلوغ نکنن اونایی که ازدواج کردن یا غیر ازدواج ها در روز موارمزون به صورتشون میزنن. اینا ما هیچی نمیگیم. خیلی خوبه. چون افول شهوت میشه. در روز یا در شب خودش خراب نکنه. بازم مستحبه معکد شد <تصفيق> بله کسی که ازدواج شرعی و قانونی کرده نباید به صورتش بزنه اما بخوره خیلی خوبه تصال به لباسش بزنه اما به صورتش نزنه زرف قوه باه میاره اما مکروه نیست ممکنه یه شخصی باشه آتیشش تون باشه هر شب بخواد عملیات اکروباسی کنه هم خودش به گور ببره هم طرف مقابلش باز برای این هم مستحب و معکده که آتیش تندش یکم بخوابه ابروغن قطی نکنه اینا پس خلاصه کراهت نداره خیلی متشکر اگر علائم قلبی از نظر پزشکی ثابت نشد اگر علائم همون بیماری قلبی در واقع با علائم این ناراحتی‌هایی که ما داریم میشه جهت درمان از آرامبخش‌ها استفاده کرده احیانا همون دردها رو خواستن بدون اگه میشه از آرامبخش استفاده کرد. درد‌های نقطه‌ای که هست اینا مربوط به ضعف اعصاب، خودخوری، درگیری ذهنی، جوش دادن، جوش خوردن، غضبناک بودم و مانند او. بله اگه عصبانیت و زیاد باشه، همیشگی باشه، منجر به ناراحتی قلبی میشه. اما اگه باشه حالا گایی یکی دو بار تو ما عصبانی میشه نه اینا اکثران مربوط از به هم ریختگی روانه و به صورت نقطهی میسوزه مثل به نه به صورت نقطهی گایی اسپاسم عصبی میشه اینجاش میگیره دستش میگیره پاش میگیره اینا ربطی به قلب نداره باید مدیریت برخشتن داشته باشه و داروهای تقویت کنند یه عصب بخوره چرا آرامش بخشهای شیمیایی بخوره که مشتقاتم, تریاکی و و عادت دارویی پیدا کنه و یه نهوه اعتیاده اینم بده اینجا از آرامش بخشای طبی یکیش هم چیه؟ یعنی همینان سال قبلی شما گلاب طبی دیگه چیه؟ عرق بیدمشک هم قوی عصامه هم آرامش بخش طبی دیگه چیه؟ گل بهاره نارنج دیگه شربت زعفران عسل. اینم آرامش بخشه. حتی اگر دو نفر شاخشونه و سهم دیگه میکشن اخماشون تو همه. شما نمیخواد بحث کنیم. توی یه شربت زعفه من درست کن دست هر دوتاشون بده. قابل عرض پده همه که عروس داماد دارن توی یه شربت زعفه رو اصل دسته ای دوتا بده. تایم بگیر. رو به ساعت بیس دقیقه نمیشه. قمیلی صدای خنده بلند شد. تا هم با باید... <تصفح> <تصفح> که جوش نخوایم پدر مادر میگن <میگه> ابلهان باور کنم که این زنور به هم می پرن. عین بعضی پدرمادر هستن دو تا بچه با هم کلکل میکنن. بعد پدر مادر رو به جون هم میفتن. حالا دو تا بچه ها دعواشون تمام دارم با هم بازی میکن. پدرمادر شدن به هم دهان. لضا تو رو و یادشیه میگه این قرار و این دعواتونم اگر نبد باشه اگر هم بود مثل بچه باشه. چه سری با هم آشتی می کنن یعنی عقده ای نباش چه خبر اون؟ نهاجق اگر تو دنیا هم زور بهش نرسه سر پل سرات جلوش میگیرم. چه خبر؟ خدا رحم که تو خدا نبودی حینیکی تو بهش نمیرم نه ما نه آسون میگیرید تا خدا هم به من شما آسون میگیره پس حیننم توضزیح دادم به خاطر اینکه ناحتی قلبی نیست بعضی هم اندکرنجن یا دلنازوکن یا دوست هر چی که میگن طرف مقابل عمل کن خدا این همه که فرموده مردم همه عمل کرن چاره معصوم این همه فرمودن عمل کرن مشتهدین و مراجع سادهتون این همه فرمودن تو رساله همه این مقلده عمل میکنن وجدانن نه گای آدم دردهای طرفه چپ قفسه سینه میگیره ها به خاطر توقعات بیجا و انتظارات بیجا و همچنین نکته سنجیای بیجا است و گاهی به خاطر بیماری دلنازکی ناشی از فشارخونه همیشه زیر نه و کمخونی شدیده که شخص دوچار بیماری دلنازکی و دوچار بیماری افسردگی شده. اینجا هر کسی هر چی میگه با خودش برمی داره. با اینکه منافق نیست یحسبونه کل صیحتن علیها نه منافق نیه بلکه به خاطر کمخونی شدید و فشار خون همیشه زیر نه حالا بیماری افسردگی داره و بیماری دلنازکی مثلا این آقا میگه والا چشمت ابرو خب معلومه ابرو دیگه شو بگم گریه کنم حالا چفلگ ای این مؤمنا میریزن بنده خدا رو بگیرن نفله کن بابا جون این من دعوان نکرد احترام سیدم نگرد داشت همش احترام بود من بیماری دلنازکی داشتم و فشارخون همیشه زیر نه خونی شدیدم باشه افسردگی هم داره علاوه بر اونی که گفتم که نکته سنجیه بیجا داره توقعات بیجا داره ببخشین تو خانواده ها هستن گایی علکی با هم دعوان میکنن عروس با مادرزن داماد پدرزن و ما مانند اینا دو تا همسایه با هم دو تا همکار دو تا هم نشین این که توقع بیجا. جا اینجا جمعیت زیاده تو حرم قهرن به هم میخورن دیگه همه امام رضا رو دوست دارن خواهم برن زهری امام رضا رو ماچ کنن قهریه بدنشون به هم میخوره یه مرتب از کوره در میره آخه به تو هم آدم میگن حیف زائر امام رزایی فلان چون یه سری جفنگیات گفتم. سواب زیارت تا اببین بردی چهار تا تومت هم زدی به این ظاهر دیگه. پس اینا هیچ کدوم نارهتی قلبی نیست توضیح دادن. در مورد خوردن گیاهان دارویی و عرقیات و حد مجاز اون سوال کردن که دو هفته قبل این سآل بود آیا میشه این داروها رو به عنوان مکمل داروهای اصلی استفاده کرد؟ یا باید اون داروها رو عنوان مثال کنار بذاشد و بعد اومد سراغ خوراکی های دارو بر طبق سن و جنسیت و نوع مرض مقدار مصرف فرق میکن یه قاشو چایخوری یه قاشو مرب بخوری، یه قاشو قضا نصف استکان، یه استکان افراد با هم فرق میکنن، نمیتونه همه رو یه دارو بدی بیماری هم با هم فرق میکنن بله کسی که سکته قلبی کرده و عمل باز انجام داده عمل قلب باز به اصطلاح باید چه پیشگیری هایی برای بیماری خود انجام دهد و در ادامهم گفتن عمل کرده و افت فشار خون داشته باید چیکار کنه تمام این سی چیز که گفتم ها برای بیماری های قلبی ضرر داره این سی تا رو تک می کنه درصد دوباره بیماریش بر نمیگرد برای اطمینان قلب خودش مربای به یا مربای آمله میوه گلابی یا میوه به انگور سیاه رسیده یا مویز یا یا مویز؟ همچنین در خضروات سبزیجات سبز تازه تره فرنگی کاهو که از میوه‌های جالیزیه و به شما از شود که کرفس که دوباره نگیره اگر دکتر متخصص متحد و جراح قلب و متخصص متعهد باشیم این رگ زاپاسم که از ورید پاد گرفتم سرگ کرانر قلبم عوض کردم بدنتم خوب جواب داده شش ماه قرانتینم گذروندی پس نزده عمل رو عمر مفید این جراحی 15 ساله کتاب های قلب و است هست اگر جوان و نوجوان بودی سخرگ از شریان ساعد سخرگ فری شریان فری از ساعد یا از جناق سینه میگیرن این سرگ کرانر قلبت عوض میکنن این جواب میده تا آخر عمر به که اون سی چیزی که برات بد بود تک کنیم سآل کردن چرا بعضی وقتها قفصه سینه درد میگیرد که تفصیل داشتیم دیگه در موردش گاهی اگر آنجین صدریه که امروز توضیح دادم. گاهی ازدیاد گاز مهده و حالت تحدوبی دیافرایم به خاطر ازدیاد گاز معده و قرغرای شکمیه و حجم ها کم میشه نفس شخص کم میشه تازه دردی در قفسه سینه میگیره گاهی درد های قفسه سینه به نوع صدری بحث آسم متوسط یا شدید یا برونشیت حاد و مزمنه یا آمفیزم ریه است، یا سرطان ریه حالا افراد با هم فرق می کنن. اینجا باید پیش متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان یا متخصص قفسه صدری سینه مراجعه کنن را رو هوا من نمیتونم چیزی بگم باید مورد مشخص باشه بعد بگم برای پیشیت ماری قلبی چه باید کرد که اشاره فرمودید با همون سی مورد برای افت فشار خون و بی اشتهایی چه باید کرد اگر ادامه بر این عرقیات مفردی فرمودید در مورد فشار خون و افتش مطلبی هست که هفته قبل فرمید توضیح اگر فشار خونش خیلی پایینه اول و آخر قضا هر کدام یک گرم نمک بخوره یعنی در 24 ساعت چار گرم نمک بخوره چه پودر نمک سنگ بهداشتی؟ چه پودر نمک دریا علاوه بر افت فشارش اگر املاح بدنش کمه مثلا اسهال دائما داره یا شکم روش داشته و مانند این آسوه تغذیه داشته اینجا نمک دریا بین 80 تا 90 عنصر داره پس اول و آخر غذا چی؟ نمک. هر بار یک گرم. تو 24 ساعت میشه چار گرم. دوم گفتیم زنیان اگه چاقیشی کمی داره فشار خونم دو درجه میبره بالا. سوم آویشن. مثلا هم فرض کن هم فشار خونش پایینه همیشه 9 هم سرد مزاج با کوچکترین سردی که میخوره مثلا یه لیمو شیرین میخوره. شروع میکنه ختم قراگاز صدام گرفتن و این حرف حالا اینجا میگیم مثلا دوغ میخوری یا ماست میخوری با آبیشن نعنا بخور هم استخون درد ناشی از ساعت مزاجیت خوب میشه هم فشار خون پایینت میاد بالا دیدی چه منظوره حال اگر کسی نه تنبلی روده بزرگ داره و همچنین افت فشار خون داره اینجا این دوغش یا ماستشو با یه قشق چایخوری پودر زنیان یا با یه استکان عرق طبیعی زنیان بخوره دعاشم به جون امام رضا کن اگر کسی ماست اذیتش میکنه معل هاوون یعنی با زنیان بخوره نانخاه هاوون هدو چشم علف سادزاد و میم آخر یعنی زنیان پس هم فشار پایین پایینت میره بالا هم حساسیت غذاایی نسبت به این ماست از بین میره چرا خودتو از ماست محروم کنی یا از دوغ شیرین کم چر؟ اون رو با زنیان بخور. هم فشار خون پایینت میاد بالا هم تنبلی روده بزرگت خوب میشه هم حساسیت نسبت به پروتئین ماست برطرف میشه. برای درمان گرفتگی رنگ ها دستور شما چند روز؟ باید استفاده کرد دستور شما از, دل... از دو هفته تا دو ماه از دو هفته تا دو ماه تمام دستورهای قضایی یا داروهای گیاهی از دو هفته تا دو ماه که از چه بعضی مریضا روز سوم خوب شدن ولی باز باید ادامه بدن که اون بیماری تو مرحله کمون یا نهفتگی باقی نمونه بلکه از بدن ریشکن بشه در مورد کدو حلوایی هم گفتن که مطلبی داریم که رگها رو باز میکند یا خیر کدو حلوایی و راغن کدو حلوایی برای کسانی که کبد بسیار گرم دارن و خارش های پوستی شدید به نوع سر سری بدن دارن برای این افراد کدو حلوایی به صورت خام یا گرفتن آب کدو حلوایی یا درست کردن روغن کدو حلوایی طبق دستوری که ابو علی سینا در قانون میدهد عربیات تک جلدی ترجمه فارسی جلد دوم ترجمه با تحقیقات و حواشی زیر هر صفحه دکترای مختلف محترم که هشت جلدی چاپ شده جلد پنجام جلد پنجام هشت جلد پنجام قسمت تهیه روغن های طبیعی گیاهی و انواع میوه ها بعد روغن کدو چجوری تهیه کنید. مثلا یک کدو حلوایی بزرگ رو پوستش میکنیم این لپاشو آب بگیر با آب میبگیریم مثلا شد چقدر؟ مثلا آبش شد چار کیلو یک چهارم این آب کدو و حلوائی روغن کنجد سمسم جل جلان روغن کنجد طبیعی غیر فراوری شده در مشهد مقدسم بلوار مسلا از چهار رو به این ور میره نمیدونم به کجای عالم میخوره به آخر نخریسی میخوره یک کم میری جلوتر اونجا یه مقاضیه هم جلو چشمت آب میگیره بد میگره. یعنی روغن کنجد میگیره دستت میده کنجدار نمیریزه با دستگاه پرست اسماش بلا نیستم شدید حالا مومنا پس اینجا مثلا آب کدو حلوهی چهار کیلو روغن کنجد یک چهارم پس یادتون باشه نسبت چیه؟ چهار جز چهار قسمت یک جز یک قسمت یک چهارم این روغن کنجد قاطی میکنید خوب که قاطی کردی میداری رو شعله حرارت ملایم تا متوسط انقدر بجوشه تا همه مایه بخار شه و فقط روغن باقی بمانه. یعنی این ظرفت که پر کردی چهار پنجمش باید کم شه. یک پنجم باقی بمونه. گرفتین چی شد؟ رو ظرفت میتونی علامت بزنی به فاصله مساوی. بعد یک پنجام که باقیمون این شد روغن کدوی خالص به صلی پزشکی ها. قوی ترین روغن در تصویه و درمان کبد گرم و خارش های سر تا سری پوست بدن که پزشکی جدید دارو ندارد. این درمان میکنه. یه قاشق قضا از این روغن کدو میخوری هر قسمتی از بدن که خارش و اگزماش به نوع خارش های گرما ماساژ بده. به یه هفته نمیشه همونجون خوب میشه در این قلب رو گفتن عمل کردند اما الان کمی تنگی نفس دارند و به سختی نفس میکشند چه باید بکنند؟ خانمی هستن که البته 21 ساله هستن سوال کردن شاید سؤال رو برای کسی دیگری سوال کرد پیاد رویای طولانی، کوه پله ها زیاد بالا پایین رفتن، کفش پاشن بلند، جوش زدن، قسط خوردن، بحث کردن، نمک زیاد خوردن، قضاهای مونده خوردن و در ظرفهای خاصی مثل پلاستیک یا تفلون، همه اینا برای زره تنها یک جا باشی برای داره. باید تو جمع باشی جمع آرون، افراد خوبیای خوبی های زندگیشون رو بیان کنند. خوبی های محیط. ما چه تالار قشنگی مومن هم. هر کدوم از این مقرنس ها، اصلا تاقدیس ها، روز وقت گرفته هم که لعاب تلا دادم. این زردا که میبینین هم؟ تلای 24 عیار هم. از پوست پیاز هم نازکتره. این تالار و اینا چه در سالونش اینا اینا دو جدارس اگر آتش سوزی خاصی بشه سریعا میشه این دیوارا رو جابجا جا کرد. و چیزای دیگه به ما ربطی نداره مربوط به حراست حرمه. حالا خواستم ببینم ببین خوبی اینجا رو بگم. اینم خوبی داره. حالا یه بچه بازی گوشی رد شده مثلا با خودکارش یا یه آدم حواس پرتی خیال میکنه اینجا مثلا تخت جمشیده مثلا و همه داره با چاقوش یا تیقش روی این سنگ میدونیسه یادگاری سال فلا ای چه قلط کاریه که بعضی انجام میدون اینا همه زامن میشین ملک تو که نیست که همون. یا ارث که بهت نرسیده اینا زمانت شرعی میاره فعل حرامه همه رو سنگ دیوار حرم یا چف و اینا تو اومدی حرم زیارت امام رضا تو چه داری این قالی چه جنسشه تو میگه قالی بافی یا مسئول شستوشو قالی من دیدم بعضی یا فضولی میکنم پر دست میکشه به فرشه فرش ایوری میکنه همین شدن با هم دیگه کل کل میکنم مثلا این فرشی آیا دست بافه یا غیر دست بافه 350 شونه 500 شونه 700 شونه یا ردیفه یا ردیفه آخو به من تو چه؟ من شما که منیم تو حرم بحثای علم و یقینی کنیم یا بریم زیارت امام رضا یا کتاب خونه ای این کنج دره کبوترانه میشموره. کفتر کفترباز تو وقتی زیارت امام رضا کفتر میشموره. حواساشون پرته. مثلا اینجا چند تا ستون داره. حالا چه بده من تو میخوره. مهندس معماری مثلا. حالا این مثلا چند تا ستون داره. شوخی نمیگم اینی که میگم واقعیت داره دیگه. من عمره مفرد مکه واجب رفتم. خب منجا باید طواف کن قشنگ نماز رو بخونم، اعمال درست بشه. داره ستون هایی مسجد حرام میشماره این کار ها نکنید مومن بده. پس اینجا چیشون مومن پس کارهایی که مربوط به تو نیست کسی که ناراحتی قلبی داره یا ناراحتی دهلیزی داره یا هر آدم دیگهی که بدنش سالمه کارهایی که مربوط به شما نیست دخالت نکن چون هم خودخوری میاره هم جوش زدنای الکی اگه گفتی چرا؟ چون می‌خوای یه قدرت نمایی کنی یه فیگور کاذب بگیری یه چیز از زبونت میپرونی حالا این کسی که متخصص تو همون رشته هست بهت اشکال میگیره با دلیل میگه حرفت غلطه. بعد جلو جمع کم بیاری. هی شروع می‌کنی الکی بلغور کردن بافتن. هی بدتر از بدتر میشه. دروغ‌گویی روش بذاری که تو روایاتش یه داره. میگه شخص که دروغ پشت دروغ های میانا خودشو بین مردم بیابرون میکنه دیدیه هرچی میری جلوتر بدتر میشه دارم مثال میزنم اما پس تو بحثای خانه و خانواده یا جامعه های بزرگتر دیگر چیزایی که مربوط به تو نیست دخالت نکن مثلا این مثال های دیگه بزن مثلا داری تو خیابون را میری آخر بینم بی میگن خیابون آخر بینم بی میگن شهر داری آخر بینم بی سامن میگن شهرداری سامن است چی شده؟ حاجقا هر چی غذا خوردم تو موج و ده اندازه خیابون همه هست شد. هنوز به خونه نرسی. آخه این فا داره داری میگی؟ که راننده تاکسیه تو هم که شغل دونه نه کارگر نمونه ای نه آسفالت کاری نه مهندس راه و ساختمانی نه رئیس تو شهرداری آخه این حرفی که کهداری میزنی آن چه فایده داره؟ علکی ذهن خود تو ذهن دیگران مشغول میکنی و دل مشغولی میاره جوش خوردنهای علکی میاره تمام اینها بیماری پرفشاری خون میاره و اگر کسی نارسایی دهلیزی قلب داشته باشا دوباره مبتلا به اختلالات میشه دوست داری یه فنرم بزنن دوست داری یه باتری قلبم اضافه کنن جوش خوردنهای علکی یا دخالت در اموری که مربوط به من و شما نیست و توان ندارم این عیب و نقص رو برطرف کنم. چه از کوچکترین چیزا باشه چه از چیزایی دیگه یکم مثاله متعارف عرفی زنم. یادتون باشه تو روایات شیه میگه آقا این حرف زدناتون از عمله. از عمله. یعنی پاتون حساب میشه. مردم اکثرا حرف زدناشون رو از عمل نمیدونن. خیال میکنن حساب کتاب نداره. و که تو روایات شیعه میگه از عمل حساب میشه چه وصال شیعه جلد 11 چاپ اسلامی تهران چه جلد 15 چاپ آل البیت چه کافی شیخ کلینی جلد دو بحث صفات مؤمنین چه تو بحث جلد 8 کتاب الروزن و چاپدار الحدیث جلد 15 حرف زدناتون از عمله پس الکی چونت حرکت نده یا زبونتو الکی دور هم بشین این حرف بزنین که یک ساعت دو ساعت دو هم هستی فامیل و غیر فامیل بعد پا میشین میری نه علم نه یقین نه تربیت نه اخلاق حسنه نه احیاء سنت رسول الله چی به چیه چی؟ هیچی. الکی وزه خوشون تجزیه تحلیل وش الکی با هم دیگه حرف نزنید این خیلی بیماری ها میاره ها حتی اختلالات تو خواب میاره اصلا عمرت زایه میکنه تو هر گفتگو دیالوگی محاوره ای حتما باید تو اون جلسه به علمت به یقینت به اخلاق خوبت به خصلت های پسندیدهت به رفتارهای مثبتت به احیاء سنت رسول الله و مانند این های خوبی که گفتن باید افزوده بشه اگر افزوده نشه عمرت زایه کردی و در اون محفل عبدالله نبودی عبدالشیطان بودی این همه روایاتی که دونم میگم چون اول آخر شنونده چیه؟ عبد. پس همیشه شنونده باید مواظب به خودش باشه که عبدالله باشه عبدالله باقی بمونه نه عبدالشیطان عمرم هم زایه بشه حالا یکی از نارسایی هایی که از عبدالشیطان آدم به دست میاره که عدوه مبینه بحث چیه مومنا؟ انواع نارسایی است یکیش اختلالات توخابه یکیش درگیری ذهنیه، یکیش خودخوریه هر کدوم یه بیماری مجزاست ها تو بحث های اختلالات روانی دل مشغولی ها آشفتگی ذهنی که احساس کمبود میکنه که احساس ناتوانی میکنه حالا بیا سر قلب نارسایی قلبی هم میاره افتخیز خون میگیری گاهی بیماری پرفشاری خون گاهی فشار خون میاد پایین چه افته مایات خون میشه و همچنین مشکلات امبساط و انقباز تو بحثایی رد شدن از مجاری از جمله از قسمت های دهلیست از جمله از قسمت های آورت آورت گاهی تنگی آورت هست گاهی امبساط آورت هست گشادی بیش از اندازه آورت هست. هر دو بیماری هست دیگه الکه خودتو مبتلا کردی حالا برای اینکه هیچ وقت های دهلیز راست و چپ و همچنین نارسایی دلختی و سلختی برات پیش نیاد شبها اون که مواظب خودت باش که توضیح دادم مدیریت برخیشتن تو بحث‌های خوراک غذای مونده نخور تو ظروف پلاستیکی تفلونی سربی آلومینیومی غذا و آشامیدنی نخور ولی هر شب قبل از خواب پنج برگ برگ سبز تو قابلانه میریزی روش سلیوان آب میریزی به جوشه بشه یک لیوان ولرم کشور صافش کن با یه قاشق پلوخوری قضاخوری اصل آویشن شیرین کن بخور اختلالات دریچه قلب دلختی سلختی دریچه میترال خوب میشه بدون جره حتی در خانمها علاوه برخوب شدن این مطلب کسانی که آمنوره سانویه دارن قطع قاعدگی چندین ماه و چندین ساله دارن و دوباره خون حیز می‌بینن. ما نمونه از اینا بوده تو مشهد که خودشون اومدن با واسطه به افرادی از فامیل و غیر فامیل گفتن باز اون خانوما تو کاغذ نوشتن گزارش کار به من دادن گرفتین مؤمنات چی شد؟ و اما سال آخر فهمیدن کسی که عمل قلب باز کرده و از روی سینه بعضی اخلاط میاد بیرون چیکار باید بکنه تا خوب بشه سیگار هم نمیکشه موقع خوابیدن هم خُرپوف زیادی میکنه استاد صبحانه عسل رقیق شده صبحگاهی صبح ناشتا عسل رقیق شده صبحگاهی عسلش رو عسل استخدوس بگذاره که ضد تجمع مایات اضافی ضد خلته بعد این صحبانش که شیر اصله اصلش دوست بذاره شیر تازه گاو کمچرد روی محل بخیه ها که از ابتدای جناق سینه هست تا قبل از ناف کل این دنده ها رو همه رو قیچی کردن اینجوری باز کردن با انبار یه گازانبار های خاصی اینجوری بر میگرد اینها تا یه مدتی مؤمن ها جوش میخوره ممکنه ظاهرش جوش بخوره اما داخلش دیرتر جوش میخوره فشار اضافی نباید بیارن به پشت نباید بخوابن حالت نیمخیز باید بخوابن تا متکا پشتشون باشه یا از این دوشک های الکتریکی داشته باشن با زاویه به صورت منفرجه بعد زیر پاشون باید متکاب بگذارن که پاهاشون ورم نکنه مخصوصا این پایی که رگ زاپاس رو کشیدن ورید رو درآوردن ورید زاپاس رو و تعویض رگاهکرران رو قلب کردن. پلا بالا پایین نره توالت حالت چمپان تهی. نیمخیز اینا نشینه بلکه باید توالت فرنگی حتما باشه حداقل حت 6 ما باید توالت فرنگی استفاده کنه هیچ وقت نباید یوبوسد داشته باشه همیشه بر لینت مزاج داشته باشه. تو جیره غذایش حتما بایدمللاین های مفید باشه. مثل انگور با هستش به جوه مثل گلابیه رسیده مثل کاهو، مثل آلو بخارا که هم خونش تصفیه بشه هم قلزت خون پیش نیاد هم یوبوست نگیره بعد این قسمت ها برای اینکه گوشت اضافی نکنه و همچنین افونت نکنه در ابتدای امر میتونه با الکل سفید هر دو روز یک بار یا یک روز در میون یک بار روش بکش، یک بار تو 24 سن بعدن به خاطر این که این نرمیش حفظ بشه و سوزش پوست پیدا نکنه در زم عفونتم نکنه پماده از نیترات نقره پماد نیترو نیترو فرازون نیترو فرازون این کره زرده اینجا هر چند روز یک بار قسمت بخیه ها رو یک بار بکشه یک بار سب کنه در مجاورت هوا این کره آب میشه بعد گاز استریل غیر روغنی یه بار مصرف رو از دارو میخره روش میذاره دست نمیزنه شی آلوده نمیزنه تصالب فهم این قسمت اصلا عفونت نکنه چه عفونت کنه خطرناک میشه باید, باید بری پیش متخصص تخلیه عفونت کنه با چرکوشکونای قوی باز نارسایی کبدی کلیه مییره هنوز قلبت رو بران نشده باز کلیه ها و کبد درگیر نشه بعدنا که این مسائل اورژانسی تموم شد مؤمنا باید آب نداق باشه نسک زیاد نباید لف بده تو همه سریع باید شستشو کنه صابون و شامپوش نباید سیپر اسید باشه باید کم اسید باشه نباید لیف یا کیسه روی بخیه بکشن یکی از علاله گوشت اضافی همینه که روی محل بخیه آدم کیس کیسه یا لیف بکشه. نه همینقدر که دستتو آغشته کردی به شامپو بچه یا صابون بچه روش کشیدی بردی آوردی کافیه بعدنا که قشن جوش خورد همه چی تموم عفونت هم نداره کاملا پوست رو به راهه حالا متخصص میگه میتونی بری استحمام سبک بگیری تو نباید بدی تو حمام یا جایی که شرجی زیاده حالت بد میشه میفتی رو زمین برای احتیاط لای پنجره حمام یا لای در بینه رخکن حمامو حتما یه بنده انگوش دو بنده انگوش باز بگذار که بخارات زیاد نباشه حالت بد نشه نیفتی زمین چون هنوز آثار جرایه باز در بدنت هست چیزایی دیگه در هنگام خواب و غیر خواب باید رعایت کنی مثلا قبل از خواب باید برین مزمزه با آب کنی استنشاق با آب کنی بینی حلق گلو پشت لرزه ها دونا لسه ها اینا رو همه رو اینها رو همه رو تمیز کنی حتما چون یکی از علل خور و و یا خورناس در هنگام خواب گرفتگی همین مسیر هاست اضافه داره خلطه چسبنده داره کیپ بینی داره گرفتگی سینوس داره به خاطر زواهد مغز و اینا حالا کسی که خودش جراحی قلب کرده این براش خطره دریافت اکسیژنش نباید کم باشه پس حتما قبل از خواب این مسیرها رو تمیز کن بهترین تمیز کننده این مسیرها خلالدندان بعد از قضا و مسواک زدن با محلول سرکه طبیعی سیبه و همچین این بخور سیب بخور سرکه سیب تنفس کنه تمام این مسیرها همه ریگلاج میشه خلطای اضافی چسمند اینا همه بمیر بعد شب قبل از خواب در این اتاقش بخور اوکالیپتوس باشد یعنی این مریض در اتاقش هر 6 ساعت 20 قطرم تطری اوکالیبتوس تو دستگاه بخور بریزه تا برانش ها حبابچه های هوایی ریه متسع باشه جذب اکسیژن بالا بره در بحث رسیدن اکسیژن به ازوله قلب به مقدار کافی باشد به مغز به مقدار کافی باشد به اندام حیاتی دیگر هم همچنین کلیا کبد تحا پس حبابچه های هوایی ریه رو متسع نگهدار با بخور اوکالیپتوس کیپ بینی رو با بخور آویشن باز نگهدار یا با مزمزه کردن قرص آویشن یا قرص اوکالیپتوس میتونی بعد بریزی بیرون ها نخوری خوشت نمیاد اما تو دهن مزمزه کن کیپ بینی اینا از بین میره. چیزایی که به اسطلاح داروهای گیایی میگن از رسته نعناییان. حالا یکی چیه نعناست. یکیش آبیشنه. همچنین همینی که خدمتون گفتیم تو بحث درختان برگاشون این هم برگ اوکالیبتوس مثلا یا قطره اوکالیبتوس. قضای مونده مطلقا برای کسانی که بیماری های قلبی دارن براشون سمه غذای مونده نبات بخورم غذاهای صنعتی و یا فست فودها سوسیس کالباس همبرگر براشون سمه یعنی به دست خودش امر خودش رو کوتاه کردم این همه هم پول خرج کرده روی جراحی باز داره همه رو ضایع میکنه دخانیات مواد افیونی قرص های روان برگردان برایش بسیار زرد داره بار سنگین در شش ماه اول بیش از یک کیلو شیش ماه اول به بعد از شش ماه به بعد از سه کیلو بیشتر نباید بار برداره برای هیچ وقت تا آخر عمرش بار سنگین نباید برداره مناطقی که شرجی شدیده مثل جزایر جنوب یا شهرهایی که شهرژی زیاده مثل نکا و مانندو قسمتهای اطراف ساری اینها در شمال ایران نه مناطقی که خیلی شهرژیه بره جاهایی که خیلی گرم و خشکه یا خیلی سرد و خشکه باز ازیتش میکنه خلاصه دائما باید موازه به خودش باشه تا طول عمر مفیدی داشته باشه و بتونه کارهای شخصی رو به نحو احسن انجام بده و کارهای اجتماعیشم از باب پذیری ولی به نوع کارهای سبک مثلا فاز میتونه کاربر و ماننده اینا کارهای سبک کارم انجام میده مثلا ناظم مثلا مصحح ورقای امتحانی مثلا بایگانی پرسنلی قسمت پرونده ها. مثلا امور مالی حساب داری یعنی خیلی با مردم سر کله نزنه یا خیلی های پلها بالا پایین نره تا میتونه از آسانسور استفاده کنه یا پله برقی به, بش... به شرط اینکه که سطح شیب داره ملایم باشه دست آستان قصد رزوی درد نکنه کار خوبی کردیم، این پله برقی با شیب ملایم در صحنه رزوی آستان قصد که بزرگترین صحنه صحنه در جهان اسلامه که کل صحن رو حواس رو زمین نیست. یعنی همه رو پایه استواره. من مسائل دیگری هست اصلا اینا بمونه نمیخوام بگم اجازه دعا بفرمایید بعد همسوی برندگان رو من رو الله هم صلی علی فاطمه ما بیها و بله ها و بنی ها و, و سر المستودعه فیها به عدد ما احا به علمک خدایا حوائج حضرت زهرا حوائج معصوم حوائج مولا صاحب زمان را به کرم و فضلت برآور قلوب مطهر ایشان را به ظهور امام زمان و استقرار حکومت عدل جانیش شاد بگردان خدایا حوائج جمعی مؤمنین و مؤمنات حوائج جمعی علماء صالح شیعه بل اخس حوائج امام راحل و حوائج رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله عظما امام خامنهای را به کرم و فضلت برابر قلوب رعوف و مهربان ایشان را به ظهور امام زمان و استقرار حکومت عدل جهانی شاد بگردان خدایا حوائج همه زوار امام رضا یا و حوائج نسلشون وحوایج همه زائرین و مهاجرین و حوایج همه مجاورین حضرت مشهدیا و حومه حوایج همهشون رو به كرم و فضلت برابر اموات را ببخش و بیامرز شهدا را با شهدای کربلا محشور کن ما و نسل ما را ذریهٔ طیبه قرار بده دیدگان و قلوب ما را به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منور بگردان. حسن عاقبت به همگی ما کرامت بفرمان.